هکایت همچنین در قای بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بر میان داشت بسیاری بگردید و ره به جایی نبرد پس به سختی هلاک شد طایفهای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاک نوشته گر همه زر جعفری دارد، مرد بی بر نگیرد کام، در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته بهک نقره خام.